فصل دوم دو روز بعد در قانای جلیل جشن عروسی برپا بود و مادر عیسی در آنجا حضور داشت عیسی و شاگردانش نیز به عروسی دعوت شده بودند وقتی شراب تمام شد مادر عیسی به او گفت آنها دیگر شراب ندارند عیسی پاسخ داد این به من مربوط است یا به تو وقت من هنوز نرسیده است مادرش به نوکران گفت، هرچه به شما بگوید، انجام دهید. در آنجا شش خمره سنگی وجود داشت که هر یک در حدود هشتاد لیتر گنجایش داد. و برای انجام مراسم تطهیر یهود به کار می رفت. به نوکران گفت، ها را از آب پر کنید. آنها را لبالب پر کردند. آنگاه عیسی گفت، اکنون چمی از آن را نزد رئیس مجلس ببرید. و آنها چنین کردند رئیس مجلس که نمیدانست آن را از کجا آورده بودند آبی را که به شراب تبدیل شده بود چشید اما خدمتکارانی که آب را از چاه کشیده بودند از جریان اطلاع داشتند پس رئیس مجلس داماد را صدا کرد و به او گفت همه بهترین شراب را اول به مهمانان میدن وقتی سرشان گرم شد آن وقت شراب پستر را میآورند اما تو بهترین شراب را تا این ساعت نگاه داشتی. این موجزه که در قانای جلیل انجام شد اولین معجزه ایسا بود و او به وسیله آن جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند. بعد از آن عیسی همراه مادر، برادران و شاگردان خود به چفرناوم رفت و چند روزی در آنجا ماندند. چون عید فصح یهود نزدیک بود، عیسیا به اورشلیم رفت در معبد اشخاصی را دید که به فروش گاو و گوسفند و کبوتر مشغولند و صرافان هم در پشت میزهای خود نشستند، پس با تناب شلاقی ساخت و همه آنان را با گوسفندان و گاوان از معبد بیرون راند و سکه های صرافان را دور ریخت و میزهای آنها را واژگون ساخت آنگاه به کبوتر فروشان گفت اینها را از اینجا بیرون ببرید، خانه پدر مرا را به بازار تبدیل نکنید. شاگردان عیسی به خاطر آوردند که کتاب مقدس می‌فرماید. آتش اشتیاق نسبت به خانه تو در من شول است. پس یهودیان از او پرسیدند چه موجزه ای می که نشان بدهد حق داری این کارها را انجام دهی. عیسی در پاسخ گفت، این خانه خدا را ویران کنید و من آن را در سه روز برپا خواهم کرد. یهودیان گفتند ساختن این معبد چهل و شش سال طول کشیده است. تو چطور می توانی آن را در سه روز بنا کنی؟ اما معبدی که عیسی از آن سخن می گفت بدن خودش بود. پس از رستاخیز و از مردگان شاگردانش به یاد آوردند که این را گفته بود و به کتاب مقدس و سخنان عیسی ایمان آوردند. در آن روزها که ایسا برای عید فسح در اورشلیم بود، اشخاص بسیاری که معجزات او را دیدند، به او گرویدند، اما عیسی با آنان اعتماد نکرد، چون همه را خوب میشناخد، و لازم نبود کسی درباره انسان چیزی به او بگوید، زیرا او به خوبی میدانست که در درون انسان چیست؟